ایران بازنگری در تاریخ قلم رو به میانیم به نام ایزد یکتا با عرض سلام و خدمت همهنان گرامی، همراهان صدای امید به ویژه همراهان برنامه پژوهشی ایران ویج. قسمت سی و این برنامه رو در خدمتتون هستیم و همچنان در مورد تحلیل دوران کیومرس و تحلیل اینکه دوره بوده، نماد دوره بوده، شخص بوده دیرینگی آن دوره و زمان و مکان آن دوره جناب آقای ایرانمر به درستی فرمودند که در تاریخ ایران باستان چه از لحاظ شاهنامه و چه از لحاظ دیگر اسناد در این شک و تردیدی وجود نداره که مفهومی به نام ایران یا ایران شهر و ملت ایران از زمان ایرج چون خب خود ایرج توسط برادرانش خب کشته میشه توسط نواده ایراج یعنی منوچهر هستش که ما مفهوم ایران رو داریم ولی از منوچهر به قبل ما مباحثمون امدتا انسان است و فرا ایرانیست و یک جهان ایرانیست و نه ایران جهانی جهان ایرانی هستش که باید تحلیل بشه خب خود من در این مورد با ایشون هم نظر هستم البته خب شاید در مورد در یک سری مواردم با آقای فیروزی هم نظر هستم حالت در قسمت های قول دادم که خودم هم یک فرضیهی در این مورد خود بنده که نیست بر اساس یک سری مسائلی هستش که از جامعشناسی سیاسی تاریخی گرفتم و نتیجه رو گرفتن یعنی حرف حرف خود بنده نیست ولی خب ظاهرا چون مباحث داره به سمت فلسفه تاریخ پیش میره و جناب آقای فیروزی هم میخوان در این, مورد، در این مورد بحث این که تاریخ آیا تکرار میشود یا نمیشود رو میخوان مورد بررسی قرار بدن و فکر کنم یکی دو برنامه در این مورد بحث بکنیم بعد برسیم باز هم به ادامه تحلیل دوره کیومرس جناب آقای فیروزی شما برنامه رو شروع بفرمایید و اینکه ادعا فرمایید که بله تاریخ و هم وقایعشون و هم مسائل دیگه‌اش قابل تکرار هستش با درود بر شما آقای ایران مهر و شنوندگان عزیز ارزم به خدمتتون ببینید ما که این همه بر مطالب شاهنامه تاکید میکنیم که شاهنامه کیومرس رو خیلی پیچیده توصیف کرده و با قاطعیت نگفته این شاه هست یا نیستی یا تنها بوده و نبیدم لباس و از پوستشی می پوشیدین حرفا از اون سمتن به متونه کوانتر نگاه کنیم شو ببینید فرمان روایان پیشدادی در یشتا صحبت شده ازشون به ترتیب هم آمدن جلو و اینها رو به عنوان یک سری کوی و یا پهلوان گزارش کردن این کسی که سروده های یشتای مختلف رو نوشته مثل یشت مثل یشت خیلی از این فرمان پیش دادی کیانی و پهلوانها و شخصی اطرافشون به صورتی انسان توصیف کرده یکی کوییز میاد یک ایزد خدای او ستایش میکنه یک خواسته ای داره برای یک دشمنی پیروز بشه نه در اوستا اومده نماد دوره نیستن و در گات‌ها شما چی دیدید اشو زرتوش از جمشید 4000 فرمان روایی پیش‌دادی به معنی انسان حقیقی نام برده که کار بدی رو انجام داده اینها تکلیفشون در کهن‌ترین سندهای در دست ما روشنه انسانن. و همون در سناطه متأخر هستن. عرض کردم دو بخش هستی یک سری از اسناد که اتفاقاً متأخراً برعکسه. اینا اولین پادشاه میدونن، یک سری اسناد میگن که این نخوسی انسانه. ولی با این سفی که من صحبت کردم ببینید اینا مسائلی دارن که من بحثا دو در سلسله‌های مربوط یا دورهای ملموس تاریخی با اینا رو من تکرار می‌کنیم. همین قضیه تقسیم بندی مملکت به دست فریدون بنسی پسرش تکرار میشه یک بار در اروپا تکرار شده شارلمانی بنسی پسرش تقسیم میکنه و این تاریخیه یک بار هم داشت به دوران هخامنشیان تکرار میشوره ما میدونیم که مملکت در واقع پخامنشیان پیش از امپراتوری ما میدونیم که تقسیم بین دو پسر نیاکان داریوش و نیاکان کوروش صورت گرفته یعنی چیشپایش به دو تا بعد پسرش تقسیم کرده چرا تقسیم بر دو کرده این صورت هندوروپاییه چرا بر نکرده پسر سوم پیشتر به اسارت و بردگی زمانتی نوآشوریان رفت اوروکو رو فرستادن که زمانتی باشه برای عدم توقیان و اندین تقسیم بر سه میشد. شد دقیقی به دو پسر تقسیم کرد برای سه هم خوابی و... دیده شده بوده حالا در مورد همین فرستادن پسر برای عدم این سریالی پخش میشود، سریال جموع نمی‌نماییم. داریم داریم کره کره بوده که چینی میان سومین یکی از شاهزاده‌های او سرزمین رو به گروگان میگه اینکه نبوده‌اند نه. و این مسئله قدیمی هستش. این تکرار تایید. تا این تکرار حالا حال بفرمایید ما. ببینید اندر. ما این بعضی شد داریم مثلا متخلفی در دانشنامه های مربوط به تاریخ وجود داره که این باز تکرار تاریخو بحث میکنه مثلاً داره درونش داره کسانی مثل اندرو اس الان آدم معاصر تا گذشتگان مثل پوسیدونیوس و پلیبیوس که پلیبیوس هم میگن و خیلی کسانی دیگه تا سیسرو من دیدم سنکا اینها به این تکرار تاریخ و موضوعات تاریخی اعتقاد داشتن یعنی سیسرو میخواسته حکومت عیناً مثل حکومت کوروش تکرار شه وقتی میاد بعد از ش... میسنجه با هم درس تاریخ هست دیگه بلد. سی رو دوستان که با فلسفه سیاسی آشنناایی دارن بله. چون فف سیاسی اروپای باستان اصلا خودش دنبال نهنگ مثلا تک تاریخ و خودش دنبال الگو برداری اصلا سی رو بلله من یه سری فاکتور ها با فاکتور روزگار خوش مقایسه کردی نمیشه اون آرزوش برگرده و خودکشی بل میکنه زندگی میکشنش یعنی قضیه رو, رو روی تکی تاریخ بحث می کرد آدم و ما فقطا ببینید این قضیه به این صورت نیستش که حتما باید مثلا به شخص نگاه کنیم این اشخاص به اون ویژگی‌ها تکرار میشن یا حتی رو مکاتب ما تکرار میبینیم یعنی ما ببینیم مثلا قضیه زهاک بیورس که بیرونی میگه که این گراشده اشتراکی داشته پوششاج یک فردی میاد مثل فریدون که این مثلا به زمیندارها و مردمی که مثلا سه‌واد بند داشتن دوباره میدون میده این قضیه در زمان کمبوژیه گئومات و دار یوش تکرار میشه این قضیه به دوران ساسانی تکرار میشه این مکاتبه هم دارن تکرارشان دو شد بس قاضی این واقعاً این تکرار تاریخ وجود داره حالا اینو چرا گفتم این رو بین علت گفتم که ما تمام این غزایار رو در متن دیگران هم داریم همونطوری قبلاً گفتم زاهق رو ما تو این اعداد فرق آنی رو در مس داریم ولی این شخصیت بیشتره الان ببینید با این نگرش به اسنار تاریخی دیگران چه زماندهایی به قدمت تاریخشون و تشکیلات سیاسی کشورشون داده برای مثال مازده جهان میخوام یونانی شروع کنم ببینید فرمان روایان سیكون ساکونتگای سیکون از 2070 پیش از میلاد اولین چیزشون در سنتو گرفتن حساب کردند کردن رفتار پیش از میلاد 4000 سال اینا تيست کردن حتی دوران حکومت کاهنان آپولو در سیکون یعنی تا از اینم نگذشته میای جلوتر کشوری به اسم آرگوس این آرگوسا مردمان آرگیوین چیزا کرد اول اسم این کشور اینا بوده بعد اسم مملکت عوض میشه عین ما این در ایران در متون خورده خود این خبری بوده یه خونی راست که بهش حالا اسم عوستایش سختتر این از دوران پسر فریدون به ایران تمیش به خاطی ای ما اینجا هم داریم افوادی که اسمشون میاد جای مملکت به اون نام مملکت گرفته میشه آرگیفا ها 1860 پیش هست بعد حالا میان حتی میگه که در کدام دوران هرکول میزیست یعنی حتی جای هرکول هم مشخص کرد حالا این هرکول مثلا بابای زعوسه و این میان طبیبش که پهلوان یه یونانی و اینجاش اینجاست که زمانشنا 1386 پیش از میلاد تا 1337 پیش از میلاد این فرماروها موجود حکومت میکنی هرگول اینه بعد میانی جلوتر برای اسپارتی ها 1100 پیش از میکنی این هرکول که میگن درسته ها جناناتا فکر نکنه افسانه است این تاریخ داره یعنی کشور ببینید کشورشون یه اسمی داشته بعد اسم از یه فرد عوض میشه تقسیم میشه اینا همین زمان داره شنه. حالا ما هم یه کشورشیم ریسا شده مثلا بعد ایران این طبیعی هستش یعنی الان با این دارن تاریخ می‌سازن من هم اون قضیه معبد رومولوس قبلا اینجوری گفته فکر تو برای ما گفتم در شهر روم اونجایی که اعتقاد داریم معبد رومولوس هنوز نوشتن به صورت سنتی معبد رومولوس و رسمی باستانشناساشون میشن معبد این منسوب به رومولوس اولش نکردن اون فرد نما دوره نکردن سر جاشه و ما این قضیه رو عرض کردم در همه جای دنیا میبینیم که به همین صورت خود تفسیر می‌کنن سندایشون به همین صورت در یک سنت ممکنه هم پرورش یافته گورگ ماده گورگ به شیر میده فینر گلشن کنار اون یه تیکش رو میبینه تو ادبیات صحبت میکنه ولی رومولوس رومولوس نخستین فرد در روم ایتشبه جدید ایتالیا هست میخواست حاکمیت تشکیل بده در شهر روم حالا میگن در متون اینو میسازه امروز میگن که نه این دایاکو رو گسترش میده حالا همونطور که ما با دیاکو میگیم می... چون در متون آشوری هست که اکباتان وجود داره میگه پس این ارودو چی گفته ار... دیاکو ممکنه یک اکباتان رو گسترش داده باشه ما هم بعد اینجوری صحبت کنیم که نمیکنه اوستا در یک کلام به ویشتا و اون جمله گاتا سیر 32 بنده هشت اگه اشتباه نکردم راجع به جمشید و بقیه یشتا مثلا رامگشت و اون نسبت به بقیه شخصیت های پیشدلی بهتر این سند هست برای این شخصیت ها که اینها انسان بودند، کردارهایی داشتن در خود اوستا مثل زهاگ بیورس اسوری شدند در خیلی مواد دیگه هنوز در گشتا اینا اسوری نیست و بعد اسوری میشه بهتر این سند است که اینها رو بعد پیگیری کنه اینها ها بودند که دوچار اصطوره شدن، نماد شدن، گم شدن، مثل شخصیت دیگران در متونشون و وظیفه پاریه و باستانشناسی را نیست که اونها را به همون صورتی که بودن پیداشون کنه. و تفقیق به شاخ و برگو از حقیقت، نه اینکه که بیاد از اول برای خودش فلسفه بافی کنه. خیلی مستشکریم از این مطالبی که در مورد بحث فلسفه تاریخ فرمودید من البته به شنوندگان عزیز قول میدم که حتما یک یا دو قسمت در این مورد بازم مفصل بحث بکنیم ولی فکر کنم جناب آقای ایران مهر از برنامه گذشته یه سری مطالبی رو هنوز نگه داشتن اینها رو بفرمایند و بعد حالا فکر کنم حدود 10-11 دقیقه جناب آقای ایران فرصت داشته باشه درود بر شنوندگان عزیز خدمتون عرض کنم که من یک درود نشسته پیشم ارز کردم من چون خودم علاقه دارم و فلسفه تاریخ مطالعه میکنم من تو آزمون فلسفه تاریخ رو بالای 60 درصد زدم کارنامارو نگاه کنین زیر ده درصد میانگین اونا که میزنن یعنی ادعا دارم رو فلسفه تاریخ آی فیروزی هم هی تحریک میکنم ما رو این خیلی بحث شیرینی هم هست بله. دوست داریم واردش بشیم اما خب حالا تا جایی که بس یک به قول‌های یک دو سشن خیلی جالبه که دربارش حرف بزنیم ببینید تاریخ خودش دو تا عنصر داره رویداد و گزارش فلسفه تاریخ معتقدن اون چیزی که تکرار میشه گزارشه نه رویداد این چیزهایی که آقای فیروزی میگن تکرار میشه کاملا درسته بخش کردن سرزمین سرزمین یک پادشاه پدر میان پسران بارها در تاریخ تکرار شده این کاملا درسته اما تقسیم ایرانویش توسط فریدون میان پسرانش دیگه تکرار نشده ببینید یک مفاهیمی هستن که اینا در تاریخ تکرار میشن من پیش از نشست خصوصی عرض کردم خدمتون ببینید نبرد در تاریخ تکرار میشه. یعنی نبرد چیزیه که در تاریخ مدام می‌بینیم تکرار میشه. جنگ از حقیقت میگه جنگ از خوددونها زایده جنگه. من یه عذر یه سوال فقط. ببینید ایراویش جهانی بود که اونها میشناختن و بهش حکومت می‌کنن، پتر تقسیم کرد. کوچیش پایشم جهانی که میشناخت و تقسیم کرد. تکرار شده. نه نه تقسیم ببینید اصلاً الان میخوام مثال بزنم که اون روشن بشه. حالا گندش بفرمایید حالا برنامه بعدی. ببینید یک مفهوم یک مقدار چیزه، یکم باید دقت کرد. ببینید نبردها تکرار میشن. هیچ شکی نیست. اما ببینید نبرد هرران دیگه تکرار نشد.